به سوت بلول و غمری اگر ننوشی می علاج کی کنمت آخر و دوا الکی زخیری بن از رنگ و بوی فصل بهار که می رسند زپی رهزنان بهمن و دی چو گل نقاب برف کند و مرق زد هو هو منه زدست پیاله چه می کنی هی هی سکوخ سلطنت و حوست کی سباتی داد ز تخت جم سخنی است و افسر گی خزینداری میراز خارگان کفر است به قول مطرب و ساغی به فتوی دفنه زمانه هیچ نبخشد که باز نستاند مجوز سفل مرووت که شیعهو لاشی نوشتند برای وان جنت المعبا که هر که اشوه دنیا خرید وای ببی سخانمان سخنتی کنم شراب کجاست بده به شادی روح و روان ها تمتی بخیل بوی خدا نشنبت بیا حافظ پیولگی رو کرم ورز و زمان و علی